داستان کشتی سه طبقه زن و شوهر فقیری بودن که توی ده زندگی میکردن. اونو بچه دار شده بودن. اما چون که اون دور وبرا کسی نبود که بچهشون رو غص تعمید بده مجبور شدن برن به شهر. اونجان با کسی آشنا نبودن، بدون پدر خوونم نمیتونستم بچهشون رو گسته تعمید بدن. تا اینکه، مردی رو دیدن که با پالتوی سیاه جلوی در کلیسا ایستاده بود. رفتن جلو بهش گفتن آهای مرد مهربون پدرخونده این بچه میشید؟ مرد هم گفت بله و بعد هم بچه رو گسل تعمید دادن. از کلیسا که اومدن بیرون مرد ناشناس بهشون گفت حالا من باید به فرزند خوندم یه هدیه بدم. اینم یک کیف پور که به درد تعلیم و تربیتش میخوره. یه نامم توشه. وقتی خوندن یاد گرفت، نامه رو بهش بدید تا بخونه. پدر و مادر پسر خیلی تعجب کردن. قبل از اینکه بتونن ازش تشکر کنند و بپرسن که کیه، مرد گذاشته بود و رفته بود. بچه رو با اون کیف پر از سکه های تلاف مدرسه. وقتی که سواد یاد گرفت، پدر و مادرش نامه رو دادن که بخونه. توی نامه نوشته شده بود پسر خونده ی عزیزم بعد از یه تبعید طولانی برای گرفتن سلطنت هم احتیاج به یه وارث دارم. به محض اینکه این نامه رو خوندی را بیفت و بیا تا پدر رو که پادشاه انگلستانه پیدا کنی. یادت باشه توی سفر از همراه شدن با آدم لوچ و چلاق و کچن دوری کنی. خلاصه. جوون با خوندن اون نامه از پدر و مادر خودش خداحافظی کرد تا بره سراغ پدر خوندش. راه افتاد و رفت. بعد یه روز پیاده روی به یه مسافر رسید. مسافره بهش گفت آهای جوان رعنا کجا داری میری؟ پسر جوونم جواب داد. من دارم میرم انگلستان. مسافرم گفت چقدر خوب منم میخوام برم همون جا. پس بیا با هم دیگه بریم. پسر جوون یه نگاهی به چشمای مسافر انداخت یاد حرفای پدرخوندش افتاد. این همون آدم لوچی بود که پدرخوندش تو نامه بهش گفته بود. به خاطر یه بهونه آورد و راهش عوض کرد. توی مسیح به مسافر دوم رسید. یه مردی بود که روی سنگ نشسته بود. به پسر جوان گفت داری میری انگلستان؟ پس یه با هم دیگه بریم چون منم میخوام برم همون جا. اینو گفت و از سر جاش بلند شد. همونطور که به اساش تکیه داده بود لنگ لنگان شروع به راه رفتن کرد. پسر جوان با خودش فکر کرد که اینم همون مرد چلاقیه که پدر خوندم تو نامه به گفته بود. به خاطر همون، این بار هم راهش عوض کرد. رسید به یه مسافر دیگه. این مسافر سوم بود. هم چشماش سالم بود و هم پاهاش. و بابت غزویه کچری هم موهای سرش انقدر پرپشت و درهم بود که نگو. چون اونم میخواست بره انگلستان، پس باهاش سفر شد. شب که شد، تو مسافر خونه اطراخ کردن. اتاق گرفتن. پسر جوون چون دلش قرص نبود کیف پول و نامه پادشاه و برد به مسافرخونه چی داد تا ازش مراقبت کنه. نصفه های شب وقتی که جوون خواب بود هم سفرش بیدار شد رفت سراغ مسافرخونه چی. کیف و نامه و اسب و ازش گرفت. فردا صبح جوون بیچاره دید که ای داده بیداد تک و تنها بی پول و بی و پای پیاده مونده. مصافح بهش گفت دیشب خدمتکارتون اومد و تمام چیزایی رو که شما به هم داده بودین و ازم گرفت. پسر جوان پای پیاده به راه افتاد. رفت و رفت تا اسب شدید که به یه درخت تو چمنزار بسته شده. رفت که سوارش بشه. اما همسفر دیشبی با اصلش از پشت درخت پریب بیرون و گفت اگه جون تو دوست داری باید نوکر من بشی و وانمود کنی که من فرزند خونده پادشاه انگلستانم اینو گفت و کلاه کلاهگیس سیاهش رو از سرش فرداشت سرش کچل کچل بود و پسر بیچاره گور خورده بود دوباره با هم راه افتادن کچل با اسب و جوون بیچاره با پای پیاده. خلاصه رسیدن به انگلستان. پادشاه انگلستان که فکر می‌کرد این کچله به سرخوندشه اونو بغلش کرد. در حالی که پسرخونده خودش رو به جای قاطرچی فرستاد که با اسب برن توی تعبیده اما کچل میخواست هرچی زودتر پسر جوون رو از سر خودش واکنه. یه روز پادشاه گفت اگه بتونی دخترمو که توی جزیره ی تلسم شده زندونی شده آزادش کنی اجازه میدم که باهاش ازدواج کنی اما هر کی برای نجاتش رفته سرش رو به باد داده. کچل گفت نوکرمو بفرستید اونجا و امتحان کنیم. اون حتما میتونه آزادش کنه. خلاصه جوون بیچاره رفت تو جزیره و کشتی هایی رو که قرار بود که از اونجا حرکت کنند رو نگاه می کرد. نمی دونست جوری باید به اون جزیرهی که شاه خانم اونجا زندونیه سفر کنه. یه دریانورد پیر با ریشای بلند که دا سر زانوهاش جلو اومده بود گفت گوش کن پسر جون بده برات یه کشتی سه طبقه بسزن. جوونم رفت پیش پادشاه و بهش گفت که براش یه کشتی سه طبقه بسزن. وقتی که کشتی تو بندر آماده شد که راه بیفته، دوباره سرکله اون دریا پیر پیدا شد. به پسر جوون گفت، حالا یه طبقهش رو پر کن از تیکیه پنیر خشک، طبقه دیگر هم از خورده های نون و طبقه دومم از داشه های گندیده. جوون این بار هم به حرفای پیرمرد گوش کرد. پیرمرد بهش گفت حالا وقتی که پادشاه بهت گفت چندتا دریا نورد میخوای بگو فقط یه دونه میخواام و منو بگیر. پسر جوان همه این کارو رو انجام داد. همه یه مردم شهر جمع شده بودند تا اون کشی رو با اون محموله عجیب و غریب و خدمش که فقط یه پیرمرد بود تماشا کنن. پسر جوان و پیرمرد دریانورد سه ماه دریان نوردی کردند بعد است ما خلاصه یه شب به یه فانوس دریایی رسیدن. وارد بندر شدن. تو ساحل هیچ چی معلوم نبود. جز خونه هایی که انقدر تاریک و کوچیک بودند و هیچ رفت آمدی هم توشون نمیشد یهو یه های یه صدایی شنیدن. صدا داشت می چی بارتونه؟ دریا نورد گفت تیکه های پنیر خشک و دوباره از ساحل یه صدایی شنیدن. این معرکه هست، همون چیزیه که به درد ما میخوره. اونجا جزیره موشا بود. هرچی موش بود اونجا زندگی میکرد. موش گفتن، تموم بارتون رو میخریم. اما پولی نداریم که بهتون بدیم. ولی هر وقت به همون احتیاج داشتین، کافیه بگین، موش های قشنگ کمکمون کنین. ما برای کمکتون فوری میایم پسر جوون و دریا نورد پیر یه پول کار گذاشتن و موشا دست کار شدن. تون تون تیکیه های خوش رو خالی می وقتی که همه یه رو خالی کردن پسر جوون و پیرمرد از اونجا رفتن به یه جزیره دیگه. این جزیره مثل جزیره قبلی بود. نه ای بود، نه درختی بود. فقط تاریکی بود. صدایی شنیدن. چی بارتونه؟ دریانورد گفت خورده های نون اونا هم جواب دادن این معرکه هست همون چیزی که به دردمون میخوره اونجا جزیره مورچهها بود همه ی اونجا بودن اونا هم پولی نداشتن که بدن اما گفتن هر وقت که به همون احتیاج داشتین کافیه بگین مورچههای های قشنگ کمکمون کنین هر جا که باشیم میاییم به کمکتون. مرچوها شروع کردن به خالی کردن تیکه های نون. بعد از خالی شدن همه ی نونا دوباره کشتی به راه افتاد. رسید به یه جزیره پر از سخراهای بلند که نوکشون سر به فلک برده بود. از اون بالام صدایی شنیدن. چی بارتونه؟ پیره مرد جواب داد گوشت گندیده اونام جواب دادن معرکه است این همون چیزیه که به درد ما میخوره و یه دفعه سایه های بزرگ و سیاهی روی کشتی افتاد اونجا جزیره کرکس ها بود اون پرنده های تمام اون جزیره رو گرفته بودند گوشتای گندیده رو پرواز کنن از کشتی خارج کردن. و به جای پول دادن گفتن وقتی که به همون احتیاج داشتین فقط کافی ما رو صدا کنین که کسای قشنگ لطفاً کمکمون کنید. بعد از ماه‌ها دریانوردی پیر مرد و پسر جوون رسیدن به جزیره‌ای که دختر پادشاه انگلستان توش سندانی بود. از کشتی پیاده شدن، از یه قار خیلی درازی گذشتن و خلاصه سر از یه باغ در آوردن. یه کوتوله اومد طرفشون. پسر جوان پرسید، دختر پادشاه انگلستان اینجاست. کوتوله گفت بیاین از سیبیانای جادوگر بپرسیم و اونا رو برد به قصفی، با زمینی پر از طلا و دیوارایی از بلور سیبیانای جادوگر روی تخت بلور نشسته بود بعدم گفت پادشاه و شاهزاده با تموم لشکراشون اومده بودن تا شاهزاده رو آزاد کنن اما همهشون کشته شدن پسر جوان گفت من چیزی جز اراده و شهامت ندارم جادوگرم گفت خیلی خوب باید از پس این ستا امتحانی که میگن بر و وگرنه هیچ فخر نمیتونی برگردی. این کوهو میبینی که جلیه آفتابو گرفته؟ فردا صبح که پا میشم میخوام آفتاب تابیده باشه تو اتاقم. باید صبح نشده این کوهو از بین ببریم. کتوله یه کلنگ آورد و و برد پای کوه. پسر جوون یه ضربه با کلنگ زد و تیغه کلنگ در جا شکست. جوان با خودش گفت چطوری من این کوه از جاشتر بیارم؟ پسر جوان یاد موش جزیره افتاد و شروع کرد به صدا کردن موشا آهای موشای مهربون، آهای موش های قشنگ کمک هم کنین. هنوز حرفش تمام نشده بود که دریایی از موش روی کوه داشت موج میزد تا نوک قله و پوشونده بودن، هی حرف میکردن و میجویدن. زمین رو با هاش میکندن. کوه تیکه تیکه کردن. فردا صبح سیدیانای جادوگر با اولین نور خورشید که تو اتاقش میتابید چشمش رو باز کرد. به جوون گفت آفرین اما هنوز کافی نیست. و اون رو به زیرزمین قصر برد. وسط زیرزمین یه عالم نخود و عدس های به بلندی یه کلیسا بود. بهشت گفت باید همین امشب نخدا رو از عدس ها جدا کنی. وای به حالت اگه یه عدس قاطی نخدا باشه. و یا برعکس. کتوله یه فانوس شمعی گذاشت و با جادوگر از اونجا رفتن. جوون با فانوسی که نورش خیلی کم بود جلوی اون کوه نخدا عدس باقی مونده بود. در حالی که با خودش فکر می‌کرد، با این همه نخود و عدس قاطتیفای باید چیکار کنه یاد مورچه های جزیره افتاد و شروع کرد به صدا کردن آهای مورچه ها مورچه های قشنگ کمک هم کنید. تاینا تا رو گفت: تموم اون زیر زمین پر شده از جونورهای کوچیک با نظم حوصله دورور اون کپه ها حلقه زده بودند دسته دست نخدا رو می دسته دیگه عدس ها رو و خلاصه تو مدت زمان خیلی کمی نخدا و عدس ها از هم جدا شدن جادوگره وقتی دید که کار تموم شده به پسر جوان گفت هنوز یه امتحان سختری در پیش داری باید تا فردا صبح یه ظرف پر از آب حیات فرام بیاری چشمه آب حیات بالای کوه خیلی بلندیه که پر از حیوانه وحشیه. فکر رفتن به اونجا غیر ممکن بود. چه برسه به رفتنش؟ بعدم برگشتم با یه ظرف پر از آب. اما جوون این دفعه از کرکسا کمک گرفت. صداشون کرد آها کرکسا کرکسای قشنگ کمک هم کنید. آسمون پر از کرکس بود که دور می زدن جوون به گردن هر کدومشون یه بطری کوچیک آویزون کرد و کرکسا ها همینطور که دنبال هم به طرف چشمه بالای کوه پرواز می کردن بطری پر از آب کردن و برگشتن پیش جوون جوون همه بطری های آگو توی ظرف بزرگ خالی کرد وقتی که ظرفش پر از آب شد صدای پای اسبارو می شنید سیبیانای جادوگر داش فرار میکرد پشت سرش هم داش میبرد شاهزاده خانوم خوشحال از قصب بیرون پرید و گفت بالاخره نجات پیدا کردم شما تونستی منو آزاد کنیم پسر جوون به اتفاق شاهزاده خانوم و ظرف پر از آب برگشتن به کشتی و دیدن که پیرمرد دریا منتظرشونه منتظرشونه که سوار شدن، لنگر کشتی رو کشیدن. پادشاه انگلستان دریا رو هر روز با دقت نگاه میکرد. وقتی که دید یک کشتی با پرچم انگلستان داره به سمتشون میاد، خیلی خوشحال شد. دوید به طرف بندر. پسر کچل وقتی جوون و سر و گنده همراه دختر پادشاه دید، چیزی نمونده بود که از عصبانیت پس بیفته. افته. به خاطر همین تصمیم گرفت که اون رو یه از بین ببره. وقتی که پادشاه از برگشتن دخترش خوشحال بود و جشن گرفته بود، اون دوتا بد برجنس رو فرستاد دنبال پسر جوون و بهش گفت پیغام بدید بهش که من باهاش حرف مهم میدارم. جوون بیچارم بتونه اینکه چیزی از این موضوع سردر بیاره دنبال اون دوتا آدن برجنس راه افتاد تا به جنگل رسید. هر جوری که بود اون آدما میخواستن پسر جوون رو از بین ببرن. موقع ناهار، دختر پادشاه تو این فکر بود که چرا پسر جوون با اون دوتا آدم برجنس رفته و دیگه بر نگشته؟ تصمیم گرفت که بره دنبالش. وقتی به جنگل رسید، جوون بیچاره، زخمی و خونی وسط جنگل افتاده بود. همون پیرمرد مرد ورد اومده بود تا بهش کمک کنه. اون ظرف آب حیات رو هم با خودش آورده بود. بدن زخمی پسر جوون رو توی آب حیات فرو کرد و بعد هم جوون سرحالتر از قبل بیرون پرید. اونقدر خوشگل شده بود که دختر پادشاه بغلش کرد. مرد کچر که داشت از عصبانیت منفجر می پرسید تو اون ظرف آب چی ریختین؟ دریانورد جواب داد روغن داغ اون وقت مرد کچل دستور داد که یه ظرف پر از روغن داغ آماده کردن بعدم به خانم گفت اگه دوسم نداری خودمو میکشم و با خنجرش خودشو زخمی کرد بعدم پرید توی روغن داغ و درجا سوخت موقع پریدنم کلاکگیسش از سرش افتاد و کله کچلش کچلشم بیرون زد پادشاه انگلستان گفت آی کچل بیره این مرد دشمن من بود و آخرشم به سزای عملش رسید. پادشاه رو به جوان کرد و گفت تو فرزند خونده منی پس با دخترم ازدواج میکنی و وارث این سلطنت میشی. و چند روز بعدم دختر پادشاه با پسر جوان ازدواج کردند و با شادی و خوشحالی با هم زندگی کردن آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را زفر کنین؟ جایی که پریها و کتوله ها زندگی می کانال هزار همونیه که دنبالشیه دنبال جایی که داستان های افزانه ای, ای سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه. کنال تلگرامی هزار افزان سفری به دنیای خیال و رویا سفری